خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست به رغم مدیانی که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ماست ببین کسی به زنختان تو چه میگوید؟ هزار یوسف مصری فتاد در چه ماست ما اگر به زلف درازت و دست ما نرسد گناه وخت پریشان و دست کته ماست ما به حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلانز گوش نشینان خاک درگه ماست ما به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است همیشه در نظر خاطر مرفه ماست ما اگر به سالی حافظ دری زند بکشا که سال حاص که مشتاق روی چون مح ماست، ما